مصنوی معنوی مولوی برنامه 169 حکایت آن شخص که خواب دید که آنچه می طلبی از یسار به مصر وفا شود. آنجا گنجست در فلان محله در فلان خانه. چون به مصر آمد کسی گفت من خواب دیدم که گنجست به بغداد در فلان محله در فلان خانه. نام محله و خانه این شخص بگفت. آن شخص فهم کرد که آن گنج در مصر گفتن جهت آن بود که مرا یقین کنند که در غیر خانه خود نمی باید و ولیکن این گنج یقین و محقق جز در مصر حاصل نشود. بود یک میراسی مال و عقار جمله را خورد و بماند او عور و زار مال میراسی ندارد خود وفا چون بناکام از گذشته شد جدا او نداند قدر هم کاسان بیافت کو به کد و رنج و کسبش کم شتافت قدر جان زان می ندانی ای فلان که بدادت حق به بخشش رایگان نقد رفت و کاله رفت و خانهها ماند چون جغدان در آن ها. گفت یا رب برگ دادی رفت برگ یا بده برگ و یا بفرست مرگ چون تهی شد یاد حق آغاز کرد، یا رب و یا رب اجرنی ساز کرد، چون پیامبر گفت مؤمن مظهر است، در زمان خالی نالگر است، چون شود پر مطربش حد زده است، پر مشو کاسی به دست او خوش است، پیشب و خوشباش بین اسبعین کزمی لاعین سرمست است این رفت توغیان آب از چشمش گشاد آب چشمش زر ادین را آب داد سبب تخییر اجابت دعای مؤمن عیبسا <تصفيق> مخلص که نالد در دعا تا رود دود خلوصش بر سما تا رود بالای این سقف برین بوی مجمر از انین مزنبین. پس ملایک با خدا نالند زار. کی مجیب هر دعا وی مستجار. بنده مؤمن تزرع می کند. او نمی داند بجز تو مستند. تو اتا بیگانگان را می دهی. از تو دارد آرزو هر مشتهی حق بفرماید که نز خاری اوست عین تأخیر عطا یاری اوست حاجت آوردش ز غفلت سوی من آن کشیدش موکشان در کوی من گر برارم حاجتش او وارود، هم در آن بازیچه مستغرق شود. گرچه می نالد بجان یا مستجار، دل شکسته سینه خسته گو بزار. خوش همه آید مرا آواز او، وان خدایا گفتن و آن راز او. وان که اندر لابه و در ماجرا می فریباند به هر نوع مرا. توتیان و بلبلان را از پسند، از خوشاوازی قفس در می کنند. زاغ را و چاغد را اندر قفص کی کنند، این خود نیامد در قصص، پیش شاهد باز چون آید دوتن آن یکی کمپیر و دیگر خوش زقن هر دو نان خواهند. او زودتر فطیر آرد و کمپیر را گوید که گیر دگر را که خوش استش قد و خد کیدهد نان بل به تأخیر افگند. گویدش بنشین زمانی بیگزند که به خانه نان تازه می پزند چون رسد آن نان گرمش بعد کد گویدش بنشین که حلوا می رسد هم بدین فن داردارش می کند و از ره پنهان شکارش می کند که مرا کار است با تو یک زمان منتظر می باش ای خوب جهان. بی مرادی مؤمنان از نیک و بعد تو یقین میدان که بهر این بود. رجوع کردن به قصه آن شخص که به او گنج نشان دادند و مصر و بیان تزرع او از درویشی به حضرت حق. مرد میراسی چو و شد فقیر آمدن در یارب و گریه و نفیر. خود که کوبد این در رحمت نصار که نیابد در اجابت صد بهار خواب دید او حاطف گفت او شنید که غنای تو به مصر آید پدید. راو به مصر آنجا شود کار تو راست کرد کدیت را قبول او مرتجاست. در فلان موزه یکی گنج است زافت در پی آن بایدت تا مصر رفت. بی درنگ هین بغداد ای نژند رو به سوی مصر و منبدگاه قند. چون بغداد آمد و تا سوی مصر، گرم شد پشتش چودید و روی مصر. بر امید وعده هاتف که گنج یا بدن در مصر بهر دفع رنج در فلان کوی و فلان موضع دفین هست گنج سخت نادر بس گزین لیک نفقش بی شکم چیز نماند خواست دقه بر اوام ناس راند لیک شرم و همتش دامن گرفت خیش را در صبر افشردن گرفت باز نفسش از مجاعت برتپید زنتجا و خواستن چاره ندید گفت شب بیرون روم من نرم نرم ز ظلمت نایدم در کدیه شرم همچو شب کوک کنم شب ذکر و بانگ، تا رسد از بام هایم نیم دانگ. اندرین اندیشه بیرون شد بکوی و اندرین فکرت همیشد سو بسوی. یک زمان مانع شد شرم و جاه، یک زمان جو می گفتش بخواه. پای پیش و پای پس تا صبح شب که بخوام یا بخوسم خوش گلاب. رسیدن آن شخص به مصر و شب بیرون آمدن به کوی از بحر شب کوکی و گدایی و گرفتن اساس او را و مراد او حاصل شدن از اساس بعد از خوردن زخم بسیار. ناگهان خود اساس او را گرفت. مشت و چوبش زد ز سفرا ناشکفت اتفاقا اندرون شبهای تار دیده بود مردم ز شب دزدان زرار. بود شبهای مخوف و منتحص پس بجد میجست دزدان را اساس تا خلیفه گفت که ببرید دست هر که شب گردد و گرخیش من است، بر اساس کرده ملک تهدید و بیم که چرا باشید بر دزدان رحیم، اشبشان را از چرا باور کنید یا چرا زیشان قبول زر کنید؟ رحم بر دزدان و هر منحوس دست بر زعیفان ضربت و بیرحمی است. هین زرنج خاص مگسل انتقام رنج او کم بین، ببین تو رنج آم. اسبع ملدوغ بر در دفع شر، در تعدی و حلاک تن نگر. اتفاقاً اندرون ایام دزد گشته بودن بو پخته و خام دزد در چنین وقتش بدید و سخت زد چوبها و زخمهای به عدد نعره و فریاد زندرویش خواست که مزن تا من بگویم حال راست گفت اینک دادمت مهلت بگو تا شب چون آمدی بیرون بکو تو نیز اینجا غریب و منکری راستی گو تا بچه مکرندری اهل دیوان بر اساس تعنه زدند که چرا دزدان کنون انبه شدند؟ انباهی از توست و از امثال توست وانما یاران زشتت را نخواست ورنه کین جمله را از تو کشم، تا شود ایمن زره هر محتشم. گفت او از بعد سوگندان پر که نیم من خانسوز و کیسبار. من مرد دزدی و بیدادیم، من غریب مصرم و بغدادیم. بیان این خبر که الکزب و ریبتون و صدق و تمانینتون. قصه آن خواب و گنج زر بگفت پس ز صدق او دل آن کس شکفت. بوی صدقش آمد از سوگند او سوز او پیدا شد و اسپند او. دل بیارامد گفتار سواب آنچنان که تشنه آرامد با آب. جزدل محجوب کورا علت است. از نبیش تا غبی تمیز نیست. ورنه آن پیغام که از موضع بود، برزند بر مح شکافیده شود. مح شکافت بان دل محجوب ن زانکه مردود است او محبوب نی. چشمه شد چشم اساس زشک مبل نیز گفت خشک بل از بوی دل. یک سخن، از دوزه خواید سوی لب، یک سخن از شهر جان در کوی لب. بحر جان افزا و بحر پرحرج، در میان هر دو بحر این لب مرج. چون یاپنلو در میان شهرها از نواحی آید آنجا بحرها، کاله معیوب قلب کیسبر، کالای پرسود مستشرف چودر. زین یپنلو هر که بازرگان تر است، بر سرو و بر قلب ها است. شد یپنلو مرورا دار و رباه، واندگر را از اما دار الجناح هر یکی زجزای عالم یک با یک بر غبی بند است و بر استاد فک بر یکی قند است و بر دیگر چو زهر بر یکی لطف است و بر دیگر چو قهر هر جمادی با نبی افسانگو کعبه با حاجی گواه و نطق خو بر مسلی مسجد آمد هم گواه کوهم آمد به من از دور راه با خلیل آتش گل و ریحان و ورد باز بر نمرودیان مرگ است و درد بارها گفتیم این را، ای حسن، می نگردم از بیانش سیر من. بارها خوردی تو نان دفع زبول، این همان نان است چون نبوی ملول. در تو جو می رسد نو ز اعتدال، که همی سوزد از او تخم و ملال، هر که را درد مجاعت نقد شد، نو شدن با جز وش عقد شد. لذت از جو است، نه از نقل نو. با مجاعت از شکر به نان جو. پس زبیجویست و از تخمه تمام آن ملالت، نه ز تکرار کلام چون ز دکان و مکاس و قیل و قال در فریب مردمت ناید ملال چون ز غیبت وکل لحم مردمان شست سالت سیری نامد از آن اشوها در سید شله کفتتو بی ملولی بارها خوش گفتتو بار آخر گویش سوزان و چست گرمتر صد بار از بار نخست درد داروی کهان را نو کند درد هر شاخ ملول خو کند کیمیای نو کننده درد هاست کو ملولی آن طرف که درد خواست هین مزند تو از ملولی آه سرد درد جو و درد جو و درد درد خاده دردند درمانهای جاج رهزنند و زرستانان رسم باج آب شور نیست درمان آتش. وقت خوردن گر نماید سرد و خش لیک خاده گشت و مانع شد جست زاب شیرین کزو صد سبزر است همچنین هر ذر قلب مانع است از شناس ذره خوش هر جا که هست پا و پرت را به تزویر برید که مراد تو منم گیر ای مرید گفت دردت چینم او خود درد بود مات بود ارچه بظاهر برد بود رو ز درمان دروغین می گریز تا شود دردت مصیب و مشک بیز گفت نه دزدی تو و نه فاسقی مرد نیکی لیک گول و احمقی بر خیال و خواب چندین ره کنی نیست عقلت را تسوی روشنی بارها من خواب دیدم مستمر که به بغداد است گنج مستطر در فلان سوی و فلان کوی دفین بود آن خود نام کوی این هزین. هست در خانه فلانی رو بجو نام خانه و نام او گفت آن ادو دیدم خود بارها این خواب من، که به بغداد است گنج در وطن هیچ من از جا نرفتم زین خیال تو به یک خواب بیایی بی ملال خواب احمق لایق عقل ویست همچو او بی قیمت است و لاشه است خواب زن کمتر ز خواب مرد دان از پای نقصان اقل و ضعف جان. خواب ناقص اقل و گول آید کساد. پس بی اقلی چه باشد خواب؟ باد. گفت با خود گنج در خانه من است. پس مرا آنجا چه فقر و شیون است؟ بر سر گنج از گدایی مردم، زان که اندر غفلت و در پردم زین بشارت مست شد دردش نماند صد هزار الحمد بی لب او بخاند گفت بود موقوف این لط لوت من آب حیوان بود در هانوت من رو که بر لوت شگرفه بر زدم کوری آن وهم که مفلس بودم خوا احمق دان مرا خواهی فرو آن من شد هرچی می خواهی بگو من مراد خیش دیدم بی گمان هرچی خواهی گو مرا ای بد دهان تو مرا پر درد گو ای محتشم پیش تو پر درد و پیش خود خوشم وای اگر برعکس بودی این متار پیش تو گلزار و پیش خیش زار گفت با درویش روز یک خسی که تو را اینجا نمی داند کسی گفت گر می نداند آمیم خیش را من نیک می کیم وای اگر برعکس بودی درد و ریش او بودی بینای من من کور خیش احمقم گیر احمقم من نیک بخت بخت بهتر از لجاج و روی سخت این سخن بر وفق زنت میجهد ورنه بختم داده عقلم هم دهد